فی ما یورجی من رحمت الله تعالی مقتین ام قبل استحقاقها در حدیث آمد که روز رستخیز امر آید هر یکی تن را کخیز نفخ سورم رست از یزدال پاک که براری دی زرایر سرزخا باز آید جان هر یک در بدن، همچن وقت سو، هو شاید به تن. جان تن خود را شناسد وقت روز، در خراب خود در چون کنوز. جسم خود بشناسد و در بی ربد، جان زرگر در درزی کی ربد. جان آدم سوی آدم می روح ظالم سوی ظالم می که شناسا کردشان علم اراغ همچو بر رو میش وقت سوگاه پای کفش خود شناسد در ظلم چون نداند جان تن خود ای سنم سو هشت کوچک هسته مستجیر هشت اکبر را یاس از بی بگیر آنچنان که جان بپرد سوگ تین نام پرد تا یسار و تا یمین برکفش بنهند نامی بخل و جود فسق و تقبا آنچه دی خو کرده بود چون شود بیدار از خواب و سهر باز آید سوی او آن خیر و شر گر ریاضت داده باشد خوی خیش وقت بیداری همان آید به پیش ور بدودی خام و زشت و در زلال چون ازا نامی سیه یا بد شماد ور بدودی پاک و با تقوا و دین وقت بیداری برد در سمین هست ما را خواب و بیداری ما بر نشان مرگ و محشر دو گوا حشر اصغر حشر اکبر را نموند مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود لیک این نام خیال است و نهان وان شبد در هشت اکبر بس ایان این خیال اینجا نهان پیدا اثر زین خیال آنجا بروگاند صبر در مهندس بین خیال خانه ای در دلش چون در زمینی ای دانه ای آن خیال از اندرون آید برون چون زمین که زاید از تخمه در هر خیالی کو کند در دل وطن روز محشر صورتی خواهد شدن چون خیال آن مهندس در زمیر چون نباتن در زمین دانه گیر مخلصم هر دو محشر قصه است مؤمنان را در بیانش حصه چون براید آفتاب رستخیز، بر جهند از خاک، زشت و خوب، تیز. سوی دیوان قضا پویان شوند، نقد نیک و بد به کوره می روند. نقد نیکو شادمان و ناز ناز، نقد قلبن در ذهیر و در گداز. لحظه لحظه امتحانها می رسد. سر دلها می نماید در جسد چون زغندی لاب و گشت فاش یا چو خاکی که بروید سرهاش از پیاز و گندنا و کوتنار سر دی پیدا کند دست بهار آن یکی سرسبز نهن المتقون و همچون بنفشه سرنگون چشمها بیرون جهیده از خطر گشت ده چشمه ز مستقر بازمانده دیده‌ها در انتظار تا که نامه نا از سوی يسار چشم گردان سوی راست و سوی چپ ز آنکه بخت نامی راست ز نامی آید به دست بنده سرسیه از جرم و فسق آگنده اندرو یک خیر و یک توفیق نه جز که آزار درست دیر نه پرز سر تا پای زشتی و گناه تسخر و خنبک زدن بر عهد راه. آن دقلکاری و دزدیهای او وان چو فرعونان انا انای او چون بخاند نامه خود آن سقیل داند او که سوی زندان شد رهیل پس روان گردد چو دزدان سوی دار جورم پیدا بست راه اعتزاد آن هزاران حجت و گفتار بد، بردهانش گشته چون مسمار بد. رخت دزدی بر تن و در خانه اش گشت پیدا گم شده افثانه اش. پس روان گردد به زندان سعیر که نباشد خار را ذاتش گذیر. چون موکم آن ملایک پیش و پس، بوده پنهان گشت پیدا چون پس هست. می برندش می سپوزندش به که برو ای سگ به کهدانهای خیش می کشد پا بر سر هر راه او تا بود که بر هد زنچا او منتظر می ایستد تن میزند در امیدی روی واپس می کند میبارد می بارد خزان خوش امیدی چه دارد او جوان هر زمانی روی واپس می کند به درگاه مقدس می کند پس هفت ام راید از اقلیم نور که بگو که ای بطال او انتظار چیستی ای کان شر رو چه واپس می‌کنی ای خیر سر نامت آن است که آمد به دست ای خدا آزار و ای شیطان پارس چون بدیدی نامه کردار خیش چنگری پس بین جزای کار خیش بیهوده چه مور موری میزنی در چنین چه کو امید روشنی نه تو را از روگ ظاهر تاعتی نه تو را در سر و باطن نیگیتی نه تو را شبها مناجات و قیام نه تو را در روز پرهیز و سیام نه تو را حفظ زبان زازار کس نه نظر کردن به ابرات پیش و پس پیش چپفت یاد مرگ و نز اخیش پس چه باشد مردن یاران سپیش نه را بر زورم توبه پرخروش ای دقا گندم نمای جوفرو چون ترازو تو کش بود و دقا راغس چون جویی ترازوی جزا، چون که پای چپ بودی در قدر و نام چون آیت تو را در دست راست. چون جزا سای است، ای قد تو خن سایه تو کش فوتت در پیش هم. زینقبل آید خطابات درشت که شبت کوه را از آن هم گوش پوشت بنده گوید آن چه فرمودی بیان سد چنانم سد چنانم سد چنان خود تو پوشیدی بترها را به علم بر نمیدانی فضیحتها به علم لیک بیرون از جهاد و فعل از ورای خیر و شر و کفر و کیش و از نیاز آجزانی خیشتن و از خیاد و وهم من یا صد و من بودم امیدی به محض لطف تو از ورای راست باشی یا اطول. بخشش محزیز لطف بی عوض بودم امیده کریم بی غرزم رو سپس کردم بدان محز کرم سوی فعل خیشتن بینن گرم سویان امید کردم روی خیش که وجودم داده ای از پیش پیش خلعت هستی بدادی رایگان من همیشه معتمت بودم بر آن چون شمارد جرم خود را و خطا محض بخشایش در آید در عطا ای باز آریش به ما که بودستش چشم دل سوی رجا و اوالیوار آزادش کنین بن خطاها را همه خط برزنین لا ابادی مرکزی را شد مباکش زبان نوبت رو و اصلال آتش خوش برفروزی مس کرم تا نماند جرم و زلدت بیش و کم آتشی که از شعله اش کم تر شرار می بسوزد جرم و رو اختیار شعله در بنگاه انسانی زنی خار را گلزار روحانی کنیم ما فرستادیم از چرخ نهم کیمیا یسله لکم اعمالکم خود چه باشد پیش نور مستقر کر و فر اختیار بلبشر گوشت پاره آلت گویای او پی پاره منظر بینای او مسمع او آن دو پار استخوان مدرکش دو قطر خون یعنی جان کرمکی و از قزر آگندهی تومطراقی در جهان افگندهی از منی بودی مننگ را وا ei, hey, Aia Zampustin ra ya